بالا آوردن برای من بود کاش میتونستم بگم که حواسم رو جمع کردم و وقتی که اون ثروت پوشالی در حال نابود شدن بود از اون واقعا درس گرفتم ولی متاسفانه اینطور نبود من دیگران رو سرزنش کردم دروغ گفتم و سعی کردم از مسئولیت هام شونه خالی کنم خوشبختانه من پدر پولدار رو در کنار خودم داشتم اون جلوی منو گرفت و من وادار کرد که دست از سرزنش دیگران بردارم و از بزرگترین درس زندگیم چیز یاد بگیرم تبدیل بدهی خوب به بدهی بد بعد از اون تجربه آموزنده پدر پولدار هین سرزنش گفت تو موفق شدی که یک میلیون دلار بدهی خوب و به یک میلیون بدهی بد تبدیل کنی تعداد کسایی که مرتکب چنین اشتباهاتی میشن زیاد نیست تو میتونی از این اشتباه درس بگیری و یا اینکه از اون فرار کنی انتخاب با خودته همونطور که گفتم اشتباهات میتونن تجربیات بسیار ارزشمندی باشن ولی وقتی که آدم در حین ارتکاب اشتباه باشه درک ارزش حماقت خود سخت میشه با این وجود به قول پدر پولدارم اون کشتی به گل مالی پر از درسهای ارزشمند بود یکی از مهمترین درسهایی که من یاد گرفته بودم این بود که رو در روی اشتباهاتم قرار بگیرم از اون درس بگیرم و سعی کنم که دیگه اونا تکرار نکنم از اونجایی که مسئولیت اشتباهاتم را پذیرفته بودم این برای من مهمترین درس از درسهای مهمی شد که تو زندگی یاد گرفتم. درس مهم دیگه آموختن فرق بین بدهی خوب و بدهی بد بود. من واقعا از اون مفهوم بی اطلاع بودم. یا لاعاقل تا اون لحظه تا اون اندازه اون را درک نمیکردم. پدر پولدارم اغلب در مورد بدهی خوب و بدهی بد به من هشدار میداد. اون می گفت، هر وقت به کسی بدهکار باشی تو کارمند پول اون میشی. اون برای منو پسر شهر میداد که بدهی خوب اینه که شخص دیگه اونو برای شما باز پرداخت میکنه ولی بدهی بعد اینه که خودتون با زحمت و تلاش فراوون اونو باز پرداخت میکن به همین خاطر اون کرایه دادن مستقلات رو خیلی دوست داشت اون می گفت بانک به شما وام میده ولی مستجر شما اقساط اونو پرداخت میکنه. من این مفهوم رو شنیده بودم و به لحاظ اقلانی اونو می فهمیدم. ولی تون اون موقع تفاوت بین بدهی خوب و بدهی بد و با تمام وجودم یاد گرفتم امروز هر وقت می بینم که مردم با استفاده از کارت اعتباری خودشون وام لوازم منزل دریافت میکنن تن من به لرزه میفته شاید اونا فکر میکنن که این ایده خوبیه و دولت هم برای این کار به اونا تخفیف مالیاتی میده ولی باید دونست که اونا فقط بدهی بد کوتاه مدت و سنگین رو به یک بدهی بد بلند مدت و کمی سبک تر تبدیل میکنن شاید این کار به طور موقت برای اونا آسودگی خاطر به همراه داشته باشه ولی این مشکل رو حل نمی کنه اونا بدهی کارت اعتباری خودشونو به یک رهن ثانی تبدیل کردن واژه رهن در زبان انگلیسی از ریشه واژه فرانسویه که به معنای درگیر شدن تا لحظه مرگه درست مثل برخی از دوستان که به سختی کار می تا فقط هرچه بیشتر تو بدهی فرو برن اونا مشکل واقعی رو از بردن و وقتی که بعدن با مشکل جدی تری مواجه میشن متوجه اون میشن تا موقعی که تحولی صورت نگیره اونا تا زمان مرگ باید با بدهی بد دست و پنجه نرم کنن وقتی که همه چیز از دست دادم احساس خیلی بدی داشتم و مدام دیگرانو برای اشتباهاتم سرزنش میکردم و میخواستم که از مشکلاتم فرار کنم پدر پولدار منو وادار کرد تا مسئولیت اشتباهاتم رو بپذیرم مرور کردن اعداد و ارقام فرایند غم ولی مفید بود با قبول اشتباهات معلوم بود که من احتمالاً نمیتونم به اندازه کافی برای باز پرداخت بدهیم سخت کار کنم. اکثر مردم هر بار مبلغ اندکی را از دست میدن و مشکل بدهی رو آروم آروم رفت میکنند اگر کسی یکصد هزار دلار از دست بده یا همین مبلغ و بده کار باشه، این امکان برای اون وجود داره تا با کار و تلاش بیشتر بدهی رو پرداخت کنه. ولی وقتی که مبلغ بدهی خیلی سنگینتر از این میزان باشه رنج و واقعیت بدهی بد و سنگین آدمو به فکر وا می داره. وقتی که من یک میلیون دلار از دست دادم میدونستم که با کار فیزیکی سخت حداقل با ظرفیت درآمد محدودم، نمیتونم اونو جبران کنم. این قضیه زندگی منو تغییر داد. یه بار پدر پولدار که با آرامش نشسته بود به من نگاه کرد و گفت تو میتونی بی تفاوت از کنار این تجربه رد بشی و وانمود کنی که چنین اتفاقی رخ نداده یا اینکه میتونی از اون به عنوان بهترین تجربه زندگی استفاده کنی یه روز در سال 1979، پدر پولدار درسی به من یاد داد که واقعا برای من ارزشمند بود. تو اون روز اون به من گفت، افراد پولدار بیشتر از افراد فقیر بدهی دارن. فقط فرق اون توی اینه که اونا بدهی خوب دارن و افراد فقیر و قشر متوسط کلی بدهی بد دارن. پدر پولدار ادامه داد، تو باید با همه بدهی ها چه خوب و چه بد همون رفتاری رو داشته باشی که با یک تفنگ پر داری. یعنی باید نسبت به با اونا با احترام رفتار کنی کسایی که با قدرت بدهی با احترام رفتار نمیکنن اغلب به لحاظ مالی از اون زخمی شدن یا حتی به قتل رسیدن کسایی که به قدرت بدهی احترام میذارن و اونو مهار میکنن ممکنه اونقدر ثروتمند بشن که حتی توی خوابم نمیدیدند همونطور که میدونی بدهی این قدرت رو داره تا تو رو بسیار پولدار کنه و این قدرت هم داره که تو رو بسیار فقیر کنه مهار کردن قدرت بدهی دلایل زیادی وجود داره که هم همرنگ جماعتی بشم که میگن کارت های اعتباریتون از بین ببرید، خودتون از بدهی خلاص کنید و در سطحی پایین تر از توان مالیتون زندگی کنید. من با این چیزا موافق نیستم. چون فکر نمی کنم این نسیه مشکل کسایی که میخوان پول دار بشن و حل کنه. برای افرادی که میخوان پول فراونی داشته باشن و سب که زندگی پولدار را لذت ببرن از بین بردن اعتباری و رهایی از بدهی نه دردی رو دووا میکنه، و نه لزمن برای مردم شادی به همراه داره اگر کسی بخواد پولدار بشه لازمه که بدون چطور هر چه بیشتر نوع مناسب بدهی رو داشته باشه یاد بگیره که چجوری به قدرت بدهی احترام بذاره و همچنین یاد بگیره که چطور قدرت بدهی رو مهار کنه اگر مردم به آموختن نحوه احترام گذاشتن به قدرت بدهی و مهار کردن اون تمایلی نداشته باشن بعد از از بین بردن کارت های اعتباری و زندگی کردن در سطح پایین‌تری از توان مالی اونا نسایه بسیار خوبی محسوب میشن. به هر کدوم از این تصمیم ها برچسب قیمت خودش داره. یک اتومبیل دست دوم عالی چند ماه قبل یکی از دوستان به منزل ما اومد تا اتومبیلی که تازه خریده بود و به من نشون بده. اون گفت من یک معاملهی کردم. من فقط مبلغ 3500 دلار بابت این اتومبیل پول دادم و 500 دلارم خرجش کردم و حالا مثل ساعت کار میکنه. خیلی راحت میتونم اونا به 6000 دلار بفروشم. بعد به من گفت بیا سوار شو و باش یه دوری بزن. من نمیخواستم بیادبی ادبی کرده باشم. کاری که گفته بود انجام دادم و با اون اتومبیل یه چرخی دور محله زدم. بعد از اتمام رانندگی آزمایشی لبخندی زدم و گفتم اتومبیل خیلی خوبیه. ولی زیر لب با خودم گفتم این اتومبیل یه دست رنگ میخواد توی اتاقش بوی سیگار میده و من که دلم نمیخواد یه چنین خودروی دلتنگ کننده داشته باشم وقتی که داشتم کلی را رو برمیگردوندم اون با خنده گفت البته من میدونم که این اتومبیل خیلی خوشگل نیست ولی اونو نقدن خریدم و از این بابت بدهی ندارم وقتی که داشت با اتومبیلش از اونجا میرفت دود غلیزی از لوله یک بیرون میزد اگر می خواهید پول دارتر شوید یک اتومبیل نو بخرید همسرم کیم یک مرسدس کروکی زیبا داره منم یه پرشه کروکی دارم حتی وقتی که بی پول بودیم هم ما سوار پرشه و مرسدس یا اتومبیل‌های خوب دیگه می شدیم. چون ما بابت اونا پول نقد پرداخت نمی کردیم بلکه برای خرید اونا پول قرض می کردیم حتما میخواد بدونید که چرا این کاره می کردیم. اجازه بدین این موضوع رو با این داستان براتون شرح بدم من اغلب این داستان داستانو تو سمینارام تعریف می کنم. این داستان درباره بدهی خوب و بدهی بد و لذت بردن از چیزهای خوب تو زندگیه. در سال 1995 از طرف نمایندگی محلی پورشه به من تلفن کردن و گفتن که اتومبیل رویاهات حاضره. منم بلافاصله خودم و به نمایشگاه رسوندم تا نگاهی به پورشه اسپیدستر مدل 1989 بندازم. من در اون موقع میدونستم که تنها هزار از اون مدل در طول سه سال ساخته شده. اگر یک مجموعه دار پیدا میشد شد که حاضر به فروش یکی از اونا می بود، قیمتی معادل 100 هزار دلار تا 120 هزار دلار در سال 1989 مطالبه می کرد. ولی در سال 1995 من به دنبال نایابترین پرشه اسپیدستر مودل 1989 بودم و اون اسپیدستر شماره یک بود، یعنی اولین مدل ساختی شده این اتومبیل بود و با اون بدنی توربوی پرشه تقریبا همه طرفداره اختصاصی پرشه به دنبالش بودند. چون اولین اتومبیل از اون مدل بود، کارخونه سازنده اونا تو نمایشگاه های بین المللی سراسر جهان به نمایش گذاشته بود و تصویر اون اتومبیل بخش بروشورها شده بود. کارخونه پرشه به همراه اون اتومبیل یک لوح مخصوص هم ارائه کرده بود. در سال 1989 بعد از نمایش اتومبیل اونا تو یک انبار خوابوندند وقتی که یک مجموعه دار در سال 1995 تصمیم به فروش اون داشت، نمایندگی اتومبیل با من تماس گرفت. اون میدونست که من به دنبال این اتومبیل هستم. اگرچه اون اتومبیل دست دوم بود ولی فقط 3800 کیلومتر طی کرده بود. همسرم کیم شاهد بود وقتی داشتم به طرف اتومبیل رویای ها میرفتم انگار که داشتم تو آسمون پرواز میکردم. توی اتومبیل نشستم. فرمون در دستانم گرفتم و نفس عمیقی کشیدم و بوی عطر چرم رو که هنوزم با اون اتومبیل بود استشمام کردم. اون اتومبیل کاملا بی‌نقص بود. و رنگ اونم عالی بود شرکت پرشه رنگش رو سفید کتانی متالیک میگفت کیم به من نگاه کرد و از من پرسید میخوای اونو بخری منم با حرکت سر و لبخند جوابشو دادم کیم گفت پس این اتومبیل متعلق به توه. تنها کاری که باید انجام بدی پیدا کردن یک دارایی تا پول اونو پرداخت کنه یه بار دیگه با تکون دادن سر حرفشو تایید کردم از اتومبیل پیاده شدم پرخ اون اونو بو کردم و خندیدم اون اتومبیل رویاهان بود که مال من شده بود ما ودیعی برای اتومبیل پرداخت کردیم و برای پرداخت مابقی مبلغ با فروشنده قرار و مدار گذاشتیم و من رفتم تا دارایی رو پیدا کنم که پول اتومبیل رو برای من پرداخت کنه به عبارت دیگه من قصد داشتم دارایی رو پیدا کنم تا بدهیم و بده و از بدهی خوب برای پرداخت بدهی بد استفاده کنم تقریبا یک هفته بعد یک ملک عالی یافتم با پول وام اونو خریداری کردم و جریان نقدی حاصل از ملک خرج پرداخت بدهی اتومبیل می میشد. چند سال بعد بدهی خرید پرشه تصویه شد ولی جریان نقدی حاصل از اون ملک ادامه یافت. به عبارت دیگه به جای اینکه از بدهی سنگین فقیرتر بشم بالعکس پولدارتر شدم و صاحب اتومبیل رویاهامم شدم که هنوزم تا به امروز اونو دارم. وقتی که کیم اتومبیل رویاهاشو پیدا کرد ما همین کارو تکرار کردیم. بهترین چیزهای زندگی رایگان هستند. ضربالمثلیه یکی میگه بهترین چیزهای زندگی رایگانن. منم موافقم. یک لبخند ساده میتونه رو شاد کنه در حالی که لبخند زدن خرجی نداره. دست بر شونه کسی گذاشتن و بهش تبریک گفتن هیچ هزینه‌ای نداره ولی میتونه شخص رو تو تمام روز سر حال نگه داره. لذت بردن از طلوع خورشید یا قمر ماه هیچ هزینه‌ای نداره. پس به عقیده من بهترین چیزهای زندگی رایگان هستند ولی در این بخش میخوام درباره چیزهای بهتری تو زندگی صحبت کنم که بابت اونا باید پول خرج کرد نوع شادی که من ازش حرف میزنم شادیه که آدم اونو تو چیزهای مادی پیدا میکنه من از شادی درونی نمیگم چون اگر اونو نداشته باشید برخورداری از چیزهای مادی اونو به شما نمیده شادی درونی رایگانه و اگر ازش برخوردار باشید خیلی ارزشمنده اگرچه چه ما دسترسی آادانه ای به شادی درونی داریم ولی همه ما اون رو پیدا نمیکنیم اهمیت استاندار به زندگی در دوران دبیرستان اتومبیل 3500 دلاری دوستم اتومبیل رویا من شد با افتخار سوارش می شدم و به همه دوستام نشون میدادم و با اون خودنمایی میکردم ولی وقتی که 40 سالگی رو رد کردم دیگه داشتن یک اتومبیل ارزون قیمت نمیتونست رویای من باشه مسئله چیزیه که استاندارد زندگی نامیده میشه و شاخص شادی و رضایت مادی ماست. به سه دلیل آگاهی از شادی مادی یا تغییر در استاندارد زندگی اهمیت داره. 1. تغییر استانداردهای خود. با افزایش سن، استانداردهای شما هم تغییر میکنه. چون ما دائما در حال تغییر هستیم. اگر شخص ببینه که سلایق اون بهتر شده ولی توانایی مالی اون برای پاسخگویی به بهبود سلایق اون تغییری نداشته، ممکنه شروع به استقراز و افزایش میزان بدهیای بد خودش بکنه تا به این ترتیب بتونه از پس مخارج این تغییرات بر بیاد. در صورتی که استانداردهای شما تغییر کردند و به ویژه اگر به سمت چیزهای گرون قیمت قیمت‌تر تمایل پیدا کرده اید، یافتن راههای افزایش درآمدتون به منظور برخورداری از توان مالی برای اون تغییرات بسیار مهمه. 2. احترام به تغییرات درونی در استانداردهای مادی مهم است. شادی درونی شخص میتونه با تغییر استانداردهای مادی تحت تاثیر قرار بگیره، ولی شخص قادر نیست با این تغییرات به لحاظ مالی برابری کنه. برای مثال، ممکنه من به عنوان یک نوجوان دبیرستانی از داشتن یک اتومبیل 3500 دلاری شاد و راضی باشم، ولی داشتن همین اتومبیلی که در دوران دبیرستان رویای من بود در میان سالی دیگه منو راضی نمیکنه. این روزا من خیلی ها رو ملاقات میکنم که از فقدان آرامش درونی شاکی هستند چون نتونستن با تغییرات در خواسته هاشون برای داشتن چیزهای بهتری توی زندگی برابری کنن با خیلیا دیدار میکنم که شاد نیستن در سطحی تر از توان مالیشون زندگی میکنن سعی میکنن فقط با خریدن چیزهای ارزون قیمت و با قیمت مناسب که تر از استانداردهای شخصی اوناست شاد باشن خرید چیزهایی که دوست دارید در واقع هزینه ی کمتری در دارد من از اتومبیل خودم راضی هستم و همسرم هم از اتومبیل خودش راضیه. ممکنه اینطور به نظر برسه که ما پول بیشتری صرف استانداردهای مادی خودمون از جمله خونه و لباسمون کردیم ولی در نهایت ما واقعا وقت و پول کمتری صرف کردیم چون ما چیزی رو که دلمون میخواد خریداری میکنیم درس هایی که آموخته چند سال پیش پدر پولدار به من گفت بعضیا معتقدند که خداوند میخواد ما کم خرج زندگی کنیم و از وسوسه چیزهای چیز بهتر در زندگی دوری کنیم بعضی های دیگه اعتقاد دارن که خداوند این چیزهای بسیار خوب رو آفریده تا ما ازش لذت ببریم این بستگی به خودت داره که به کدوم دیدگاه خداوند معتقد باشی من به این خاطر داستان اتومبیل پرشم رو برای شما تعریف کردم که دلم میخواد شما از چیزهای مادی بسیار خوبی که این دنیا عرضه میکنه برخوردار بشید البته بدون اینکه رفاه مالیتون از دست بدید و دست آخر هم از جهنم مالی سر در بیارید. و همچنین هدف من از گفتن اون داستان درسهایی که با دنبال کردن اونها به ثروت برسید درس شماره یک اهمیت خوب و بد همونطور که قبلا گفتم پدر پولدار بر اهمیت سواد مالی و اینکه صورت مالیتون پس از ترک مدرسه به عنوان کارنامه شما تلقی میشه تاکید میکرد. دارایی ها بدهی ها را پرداخت میکنن. من هم برای خرید پرشه و هم برای سرمایه گذاری روی مستقلات یک پروژه انبار کوچیک در تگزاس وام گرفتم. جریان نقدی سرمایهگذاری هزینه های ماهیانه پرشر را پوشش می داد. به دلیل مدیریت خوب، جریان نقدی حاصل از اون انبار کوچیک به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرد و اقساط پرشه دو سال زودتر تصفیه شد. امروز من و کیم، مالک اون ملک، جریان نقدی حاصل از اون و پرشه هستیم. ما از همین فرایند برای خریدن اتومبیل مرسدس بنز اونم استفاده کردیم. پس ما تونستیم وقتی که سوار اتومبیل های رویاهامون بودیم، پول دارترم بشیم. دوستانمون که در حد توان مالیشون زندگی میکنن و سوار اتومبیل رویه هاشون میشن به جای پولدارتر شدن فقیرترم شدن چون درآمد حاصل از شغلشون تنها منبع درآمد اوناست اونا ظاهرا وضع خوبی دارن ولی من فکر میکنم های مالی از بدهی بد داره اونا رو از درون میخوره اونا به جای خریدن دارایی ها با بدهی خوب با بدهی های بد بدهی میخرن خرید دارایی با بدهی خوب که بشه باش جریان نقدی حاصل از اون بدهی های مورد نظر خودتون تو زندگی رو پرداخت کنید چیزی بود که پدر پولدار به من یاد داد جریان نقدی حاصل از دارایی هاتون نمایانگر پولیه که برای شما کار میکنه. چیزی که دوستان و خیلی ها امروز اونا درک نمیکنن. واقعاً برای چه کسی کار می وقتی که صحبت از بدهی خوب در مقابل بدهی بد میشه مایل هستم حرف پدر پولدار که اغلب به من می رو برای شما نقل کنم هر وقت که به کسی بدهکار باشید کارمند پول اون میشید یعنی اینکه اگر یک وام با بازپرداخت پرداخت سی ساله دریافت کنید بلا فاصله به مدت سی سال کارمند اعطا کننده ی وام میشید متاسفانه پس از تصویع بدهی کسی به شما ساعت طلا جایزه نمیده. پدر پولدار خودش وام میگرفت ولی نهایت سعی خودشو می کرد تا اون کسی نباشه که در واقع اون وام ها رو باز پرداخت میکنه. این نکته کلیدی کار اون بود. جاداره که نصیحتشو رو یه بار دیگه بازگو کنم. اون برای من و مایک توضیح داد که بدهی خوب بدهیه که شخص دیگه اونو برای شما باز پرداخت میکنه و بدهی بعد، بدیهی که شما با تلاش و زحمت فراوون اونو خودتون باز پرداخت می علاقه وافر اون به کرایه دادن املاک بر این اساس استوار بود که بانک به شما وام میده. این مستجر شماست که اقساط اونو باز پرداخت میکنه. اجازه بدید یک نمونه از مثال واقعی برای شما نقل کنم تا نحوه عمل کرده اونو به شما نشون بدم. فرض بگیرید خونه جماجور و زیبا در محله خوب پیدا کردید و قصد خرید اونو دارید این درسته که خونه نیاز به کمی تعمیرات مثل شیروانی جدید، ناودونای جدید و شایدم رنگکاری داره. ولی روی هم رفته در بین سایر خونه‌های قرار گرفته که نسبتا خوب نگهداری شدن. محله بافت خوبی داره و مدارس خوبی اونجا وجود دارند. حتی از اون بهتر. محله در نزدیکی یک دانشگاه دولتیه که همیشه به دنبال خونه‌های دانشجویی بیشتریه چون سال به سال دانشجوهای بیشتری در اونجا ثبت نام می‌کنند. مالک خونه می‌خواد بازنشسته بشه. و به جای گرم و پرافتاب نقل مکان کنه اون خونه خودشو۱۱ هزار دلار قیمت گذاری کرده شما کمی چونه میزنید و دست آخر بر سر قیمت 100 هزار دلار به توافق میرسید شما قبلا ده هزار دلار در حساب بانکیتون پسنداز دارید پس لازمه که حداقل 90 هزار دلار وام دریافت کنید ولی در واقع چون فقط ده هزار دلار موجودی دارید تصمیم میگیرید که برای دریافت وام صد هزار دلاری اقدام کنید چرا؟ به خاطر اینکه با ده هزار دلار اضافی میتونید هزینه های نقل و انتقال مستقلات و دستمزد تعمیر کار برای رنکاری و تعمیر شیروانی و ناودونا را بپردازید؟ در خیلی از موارد بانک با کمال میل مبلغ وام و در اختیار شما قرار میده؟ چرا؟ به دلیل اینکه مبلغ وام به وسیله ارزش وسیقه خونه تضمین میشه؟ اگر به بانک برید و صد هزار دلار وام تقاضا کنید؟ ولی برای تضمین اون وسیقه یا داراییهایی تضمین شده نداشته باشید پاسخ بانک به شما منفی خواهد بود. ولی با وسیقه قرار دادن خونه معمولاً بانک در تعمین مالی وام به شما کمک میکنه. فراموش نکنید که کسب با و کار بانک ها اعتای وامه و وقتی که اونا بدونن وسیقه واقعی برای تضمین بازپرداخت وام وجود داره نسبت به اعطای وام مذکور اقدام میکن. پس ادامه میدیم: تحت نرخ تمین مالی حاضر، بانک به شما وامی با بازپرداخت سی ساله با نرخ 6 درصد میده. البته در ابتدا بانک مبلغ نقدی معادل ده هزار دلار به عنوان پیش مطالبه میکنه که شما این مبلغ رو پرداخت میکنید. کنید. بنابراین، علاوه بر مبلغ سد هزار دلار رهن، اکنون کل مبلغ سرمایه گذاری شما معادل 110000 و ده هزار دلاره. با احتساب مالیات هایی که به ملک شما تعلق میگیره. اقصات ماهیانه رهن شما تقریبا معادل 700 دلار خواهد شد. ولی همونطور که قبلا ذکر شد، شما که نمیخواید برای سی سال آینده کارمند وام اون بانک باشید. مادامی که به بانک بدهی دارید، شما مجبور هستید برای اون کار کنید. روش بهتر اینه که شخص دیگه اون بدهی رو برای شما باز پرداخت کنه. پیشنهاد پدر پولدار این بود، همین که معامله را تمام کردید و مالک خونه شدید. درباره امکان اجاره خونه خود به دانشجوها با دانشگاه محلی وارد گو بشید. فرض بگیریم ماهیانه هزار دلار کرایه بگیرید. اگر اون خونه چهار خوابه باشه به راحتی چهار دانشجو رو توی خودش جا میده و هر دانشجو باید پنجاه دلار در ماه پرداخت کنه. این مبلغ حتی برای دانشجوهایی که از بار هزینه نگران هستن هم مناسبه یا اینکه میتونید سری به یک آژانس املاک بزنید تا ببینید که برای کرایه دادن ملک شما چیکار میتونه بکنه. خیلی از آژانس‌های املاک در مقابل یک مبلغ نگهداری ناچیز نه تنها مستجری برای ملک شما پیدا میکنن، بلکه خودشون به امور نگهداری جزئی مثل تعمیر لوله حمام هم اقدام میکنن. خبر خوب دیگه اینکه اگر مبلغ کرایه ملک شما هزار دلار در ماه باشه و مبلغ قسط وام شما فقط 700 دلار باشه پس جریان نقدی شما معادل 300 دلار در ماهه این درآمد خالص به عنوان درآمد غیرفعال فعال نامیده میشه یعنی اینکه لازم نیست هیچ کار سخت و سنگینی برای کسب اون انجام بدید شخص دیگه که در اینجا مستجر شماست وام با اقساط سی ساله شما را پرداخت میکنه و حتی از اون بهتر 300 دلار اضافه هم در ماه کسب میکنید فلسفه پدر پولدار در مورد سرمایه گذاری روی مستقلات، اصولاً بر مبنای جریان نقدیه آیا شما در پایان هر ماه از جریان نقدی مثبتی برخوردار هستید ولی عموما این عقیده هم وجود داره که ارزش مستقلات بالا میره در حالی که هر ماه درآمد اضافی دارید همزمان اقساط رهن خودتون رو پرداخت میکنید به معنای اونه که خیلی آهسته و مدام در حال تبدیل دارایی خالص به خونه هستید از اونجایی که ارزش ملک شما به مرور افزایش پیدا میکنه سرمایه‌گذاری 110 هزار دلاری اولیه شما توی اون خونه هم ممکنه افزایش ارزش پیدا کنه به عبارت دیگه اگر ده سال دیگه تصمیم به فروش اون خونه داشته باشید ارزش روز اون ممکنه به 125 هزار دلار رسیده باشه بنابراین از نظر تئوری، علاوه بر درآمد غیرفعالی که داشتید 15 هزار دلار هم سود نصیبتون میشه ولی باید به اختار پدر پولدارم توجه کرد چشم از جریان نقدی خود بر نداری به افزایش احتمالی ارزش ملک خود به عنوان یک پاداش نگاه کنید و اونو دلیل خرید خود در نظر بگیرید. از کسانی که کنترل را در دست دارند نکتهی بیاموزید. بیایید با مرور کتاب داستانهای موفقیت پدر پولار، نگاهی بندازیم به سرگذشت مردم عادی که از زندگی کردن با حقوق ماهیانه خسته شده بودن. اون از شمارش سالها برای رسیدن به بازنشستگی و بهرهمندی از طرح حقوق بازنشستگی با فرض اینکه اونقدر پول پسنداز شده باشه که بشه باهاش بازنشسته شد و ناامید شده بودند توی اون کتاب روایت های افرادی رو پیدا می‌کنید که از نوجوانان گرفته تا برخی از بازنشستگان با عمل کردن به توصیه‌های پدر پولدار به رویای دستیابی به درآمدهای غیر فعال دائمی جامعه عمل پوشوندند خیلی از اون داستان‌های موفقیت بر پایه سرمایه گذاری در مستقلات استوارند. همه کسایی که اسمشون توی اون کتاب اومده، چگونگی غلبه بر ترس خودشون از جهش اعتقادی اولیه برای پیدا کردن اولین سرمایه گذاری در املاک رو شرح میدن. ولی همواره همین که جریان ایجاد درآمد غیرفعال رو می‌بینن، تقریباً همگی برگشته و مجدداً اون جریان رو تکرار می‌کنن که در خیلی از موارد بارها این اتفاق تکرار میشه. بعضی از اونا کار را با املاک کوچیک شروع میکنن و اونا رو به املاک بزرگتر توسعه میدم و همگی به این نکته اشاره میکنن که نصیحت پدر پولدار اونا رو توی مسیر راهنمایی کرده تو برخی از داستانهای موفقیت اشخاص به منظور کسب آزادی مالی خودشون تصمیم به سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچیک میگیرن تو یکی از فصول کتاب شرح حال خانومی ارائه شده که در خشکشوی سلف سرمایهگذاری میکنه همین که اون و شوهرش می‌بینن که این یک سرمایه گذاری نسبتاً ایمن و آسونه، اونا در دو خوششوی سلف سرویس دیگه هم سرمایه‌گذاری در حال حاضر اون و شوهرش از نظر مالی وضعیت خوبی دارن و اولین کسایی هستند که به شما میگن که انجام این کار فقط نیاز به کمی تکالیف مالی داشته تا اینکه پول برای اونا کار کنه و نه اینکه اونا برای پول کار کنن. نکته اینه که بیشتر مردم به دلیل پرداخت صورت حساب‌های پی نمیتونن تصور کنن کنند که از نظر مالی پیشرفتی داشته باشند. فقط زمانی که بالاخره عزم خودشون جزم می‌کنند تا تغییری در سبک زندگی اقتصادی خودشون به وجود بیارن، مصمم میشن تا به سایر راههای پول درآوردن هم توجه کنند. همونطور که پدر پولدار گفت، اگر میخواید از این تلاش بیهوده رهایی پیدا کنید، پس بهتر انواع مختلف درآمد، یعنی عادی، اوراق بهادار و غیرفعال را بیاموزیم. فرقی نمی‌کنه که سرمایه‌گذاری در املاک، کسب و کار یا سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها باشه. فقط همین که متوجه بشید به غیر از داشتن یک شغل، خیلی راه‌های آسونتر و بهتر برای کسب درآمد وجود داره، وضعیت اقتصادی شما و خانواده‌تون رو به بهبود خواهد گذاشت. درس شماره 2 قدرت الهام. اجازه بدید برگردیم به سراغ داستان اتومبیل دست دوم، وقتی که سوار اتومبیل دست دوم دوستم شدم احساس افسردگی کردم. نشستن توی اون اتومبیل برای من الهام بخش نبود. مثل وقتی که سوار پرچه خودم میشم صدای آواز فرشتگانو نشنیدم یا درهای نعمات آسمانی برایم گشوده نشدم. وقتی که دوستم با اتومبیلش دور میشد و از لوله اگزاز اون دود قلیز بیرون می اومد حالا هووا پیدا کردم. برعکس، عکس وقتی که پارکینگ رو باز میکنم و پرچه خودم رو نگاه میکنم، هنوزم صدای فرشتگان رو میشنوم. من عاشق اون اتومبیل هستم و عاشق الهام بخشی اون هستم که منو به سمت سرمایه گذاری در ملک دیگه میکشونه. به عبارت دیگه اون اتومبیل الهام بخش من در پولدارتر شدن بود. نشستن در اتومبیل دوستم فقط به من الهام کرد که برم و دوش بگیرم. من معتقدم که خلقت به ما انسانها در ساختن اشیاء زیبا کمک میکنه. وقتی که من یک نقاشی زیبا یا یک خونه زیبا یا یک اتومبیل زیبا رو میبینم، احساس میکنم چیزی به من الهام میشه. من بخشندگی، زیبایی و وفور نعمت خداوند رو احساس میکنم و این منو تشویق میکنه تا برم و با قدرت بیشتر سرمایه گذاری کنم. دقت داشته باشید که میگم سرمایه گذاری بیشتر و نه سخت کار کردن. من میبینم اغلب افرادی که دور بر ما هستن، خیلی برای ما الهام بخش نیستند چون خیلی دست کم من دوستای سمیمی دارم که اونقدر ناخون خوشگن که وقتی تو منزل اونا مهمون هستیم احساس میکنم در اتومبیل دست دوم دوستم نشستم من واقعا با دوستای خودم صادق هستم و نظرات مالی خودم رو بهشون تحمیل نمیکنم ولی اونا به سختی کار میکنن تا فقیرانه زندگی کنن در حالی که من و کیم به سختی کار میکنیم تا مدام توانایی مالیمون رو گسترش بدیم و این در شیوه زندگیمون تفاوتی بزرگ ایجاد میکنه همونطور که گفتم ما همگی متفاوت هستیم و انتخاب ما توی زندگیمون هم با همدیگه فرق میکنه. من فقط به شما میگم که چجوری من و همسرم از تجملات زندگی برای الهام گرفتن جهت پول دار شدن استفاده میکنیم. درس شماره 3 بانک ها دوست دارند هم برای دارائی ها و هم برای بدهی ها وام بدهند. این گفته من توی کتاب پدر پول دار پدر بی پول، که خونه ما دارایی محسوب نمیشه اختلاف نظرهای زیادی پدید آورد در واقع نسبت به سایر مطالب توی کتاب هم بیشتری نامه های خشمالود مربوط به این نکته بود من اغلب میگم وقتی که بانک به شما میگی که خونتون یک داراییه به شما دروغ نگفته فقط اونا به شما نمیگن که اون واقعا دارایی چه کسیه خونه شما دارایی اوناست همینطور من نمیگم که خونه نخرید تنها چیزی که میگم اینه که اسم بدهی رو دارایی نذارید. ولی هنوزم نامه های انزجار به دستم میرسه. بانک بدون توجه به اینکه شما دارایی یا بدهی میخرید به شما وام میده. بانک به شما نمیگه که کدوم یک رو بخرید. پس اگر بخواید یک خایق تندروی نو خریداری کنید و صورت مالی شما نشون میده که میتونید اقساط اون رو پرداخت کنید، بانک خیلی خوشحال میشه که به شما وام بده. اگرم بخواید که خونه‌ی سه خوابه بخرید تا اونو کرایه بدید و ازش پول در بیارید و در این حال صورت مالی شما مساعد باشه، بازم بانک معمولاً به شما وام خواهد داد. چرا؟ به خاطر اینکه خواه شما پول رو برای بدهی یا دارایی قرض بگیرید، هر دوی اونا برای بانک یک دارایی محسوب میشه. بنابراین کسایی که ابتدا وام رو برای خرید دارایی دریافت میکنن، دست آخر پول بیشتری برای خرید بدهی خواهند داشت. و افرادی که فقط به خرید بدهی اقدام میکنند، اغلب دیگه براشون پول باقی نمیمونه تا باش دارایی بخرن از اونجایی که بانک واقعا اهمیتی نمیده شما دارایی یا بدهی بخرید چون هر دو برای بانک دارایی محسوب میشه پس این شما هستید که باید مراقب باشید در حقیقت هر چقدر شما مراقب باشید بانک هم به همون میزان خوشحالتر خواهد بود چون وظیفه بانک اینه که به شما وام بده نه اینکه تقاضای وام شما رو رد کنه اگر شما وام نگیرید بانکام درآمدی نخواهند داشت پس هر چقدر شما پول تر بشید، بانک هم خوشحالتر خواهد شد. من که آشق بانک خودم هستم چون به هم وام میده تا هم دارایی و هم بدهی بخرم درس شماره چهار بانک کدام دارایی را بیشتر از همه دوست دارد؟ یک موجه رادیو از من سوال کرد شما در چه چیزی سرمایه گذاری می کنید؟ من جواب دادم قبل از سی سالگی شروع به سرمایه گذاری در املاک کردم پس بیشترین حجم سرمایه گذاری هام امروز هم همون مستقلاته. همچنین من مالک چند کسب و کار و دارایی‌های کاغذی مثل اوراق بهادار و اوراق قرضه هستم. بعد مجری گفت من که از مستقلات خوشم نمیاد. دوست ندارم لوله توالتو تعمیر کنم و شب دیر وقت مستجر رو بهم تلفن کنن. به همین خاطر من در مستقلات سرمایه گذاری نمی کنم. دارو نداره من در اوراق بهادار یا سندخواهی مشترک سرمایهگذاری خلاصه میشم. بعد اون مصاحبه رو به اتمام رسوند. یه آگهی بازرگانی پخش کردند و منو به بیرون از استودیو راهنمایی کردند. یک ایده گران قیمت. وقتی که شب شد، من داشتم درباره اون مصاحبه فکر می‌کردم. با خودم گفتم اون مجری رادیو چه تصمیم گران قیمتی گرفته. اون درش نمی‌خواد توی مستقلات سرمایه گذاری کنه. چون دوست نداره لوله توالتو تعمیر کنه یا نصف شب بهش زنگ بزنن. نمیدونم که اون میدونه همین ایده چقدر برای اون گرون تموم میشه؟ چهار دارایی اول که یه شخص میتونه توش سرمایه گذاری کنه، عبارتند از یک. کسب و کار دو مستقلات سه. دارایی های کاغذی چهار کالا همونطور که اون شب ساکت اونجا نشسته بودم، میتونستم صدای پدر پولدارو بشنوم که میگفت بانک به کدام یک از این چهار مجموعه دارایی بیشتر علاقه منده؟ پاسخ، مستقلاته. از بین این چهار مجموعه، دریافت وام برای راهاندازی یک کسب و کار بسیار مشکله. شاید بتونید برای یک کسب و کار کوچک وام دریافت کنید. ولی برای دریافت اینجور وام ها لازمه که سایر دارای های خودتونو عنوان وسیقه بدید. راضی کردن بانک برای اعطای وام جهت خرید دارای های کاغذی یا کالا. مخصوصاً برای مدت سی سال با نرخ بهری پایین بسیار مشکله. ولی بانک حاضره برای خرید مستقلات به شما وام اعطا کنه. سالها پیش پدر پولدار به من و مایک گفت اگه می‌خواید پولدار بشید، باید هر چیزی رو که بانک میخواد ارائه کنید. اول از همه، بانک میخواد صورت مالی شما رو ببینه. دوم، بانک میخواد به شما وام بده تا مستقلات بخرید. فقط بدونید که بانک از شما چی می‌خواد. در این صورت پول دار شدن براتون راحت تر میشه. نظر منفی موجی رادیو نسبت به مستقلات ایده گرون قیمته. چون اون بدون اینکه بتونه از پول وام برای خرید سرمایه گذاری استفاده کنه، می باید از دلارهای خودش پس از کسر مالیات برای خرید اوراق بهادار، اوراق قرضه و اوراق مشارکت استفاده کنه. اون باید از گرونترین پول، یعنی پول خودش، که از کار سخت حاصل میشه. و فقط بعد از اون که دولت سهم خودش رو به عنوان مالیات کچ میکنه استفاده کنه اجازه بدید با استفاده از یک مثال ده هزار دلاری این نکته رو روشن کنیم اگر موجی رادیو اوراق مشارکت خریداری کنه اون تنها میتونه به میزان ده هزار دلار خرید کنه اگر اون موجی قرار بود که یک ملک رو خریداری کنه در این صورت اون میتونست یک ملک صد هزار دلاری رو با همون ده هزار دلار خریداری کنه و 90 دلار رو وام از بانک بگیره چنانچه اون ملک جریان نقدی مثبتی داشته باشه کرایه‌های پرداختی مستجررا کلیه مخارج و هزینه های رهن بانکی رو جبران می‌کنند. و علاوه بر اون مقداری هم درآمد برای اون حاصل میشه. فرض بگیریم که وضعیت بازارم مساعد باشه و هر دارایی در اون سال ده درصد ترقی کنه. اوراق مشارکت برای سرمایه گذار هزار دلار سود میکنه ولی اون ملک برای سرمایه گذار ده هزار دلار سود می کنه. که این سود به غیر از درآمد حاصل از جریان نقدی و پرداخت شدن اقساط وامه. اگر سرمایه گذار قصد فروش ملک رو داشته باشه در صورتی که بخواد از پول فروش اون ملک نسبت به خرید ملک دیگه اقدام کنه در نظام مالیاتی آمریکا به سود سرمایه مالیاتی تعلق نمیگیره. اوراق مشارکت احتمالا جریان نقدی نداره و از مزایای استهلاک هزینه برخوردار نیست و اگر خارج از طرح بازنشستگی باشه با نرخ مالیات سود سرمایه به اون مالیات تعلق میگیره. اگر هم در داخل طرح بازنشستگی باشه، با بالاترین نرخ مالیات یعنی مالیات بر درآمد عادی مکتسب هنگام برداشت نهایی مالیات بندی میشه. من نمیگم که دارایی‌های کاغذی بدن، بلکه می‌خواستم خزینه ایده من در مستقلات سرمایهگذاری نمی‌کنم و نشون بدم. از نظر من بزرگترین هزینه آزادی شخصیه. برای من و بهترین جنبه مستقلات درآمد جریان نقدی غیرفعال ماهیان است که مالیات اون با برخی کمتر از درآمد عادی محسوب میشه و به ما اجازه برخورداری از آزادی مالی میده. به عبارت دیگه مستقلات باعث میشه که ما بدهی خوب داشته باشیم و بدهی خوب بدهیه که به سرعت پولدار شدن میافزاید ولی جهت استفاده از وام بانکی برای انجام سرمایه گذاری با هدف پولدار شدن سریتر هزینه ای داره که باید بپردازید اگر به بازده سرمایتتون بدون استفاده از وام بانکی برای سرمایهگذاری نگاه کنید متوجه میشید بازده شما معادل 10 درصد برای ده هزار دلاره در حالی که با استفاده از وام بانکی بازده شما صد درصد برای مقدار پول شما خواهد بود اگر بازار مستقلات تنها یک درصد ترقی کنه بازده اون معادل ترقی 10 درصدی در بازار اوراق بهادار خواهد بود اگر مزایای مالیاتی رو در نظر نگیریم، بازار مستقلات میتونه با کمتر از یک درصد بهبود همون بازده خالصی رو داشته باشه که بازار اوراق بهادار با ده درصد بهبود اون رو داره. اینا همون دلایلی هستن که پدر پولدار عنوان کرد. همیشه آنچه را که بانک میخواهد به او ارائه کنید. و به همین دلیل به ما اختار کرد که همیشه با هر بدهی مثل یک اسلحه پر رفتار کنید. چون استفاده از وام برای سرمایه گذاری میتونه با نیروی برابر به هر دو طرف نوسان کنه. شما میتونید با استفاده از پول بانک پول زیادی در بیارید و ممکنه با استفاده از پول بانک پول زیادی از دست بدید. بنابراین به هایی که باید پرداخت بشه، سرمایه گذاری در آموزش و کسب تجربه به مدت چند ساله. اگر تمایلی به پرداخت اون بها ندارید، پس از پول ساگرین استفاده نکنید. پرداخت بهای آموزش من در دهه 1970 در یک دوره گذاری در املاک شرکت کردم که برام 385 دلار آب خورد. شرکت توی اون دوره سه روزه یکی از بهترین سرمایه های عمرم بود. من با کارم به آهستگی با سرمایه های کوچک شروع کردم و به مدت 5 سال در امر گذاری تجربه لازم رو کسب کردم. من دلم نمیخواد لوله توالتو تعمیر کنم. یا این که دوست ندارم شب دیر وقت وقتم تلفن کنن واقعا هم چنین اتفاقی نیفتاده ولی چیزی که سرمایه گذاری در املاک نصیبم می‌کنه رو دوست دارم و اون بدهی خوب فراوون و کلی آزادیه در یک سمینار در مورد مستقلات در دالاس تگزاس که توش سخنران مهمان بودم پیرمردی حدوداً 60 ساله نزد من اومد اون شنیده بود که من گفتم پدر پولدارم به من یاد داده که با بازی روپولی یک سرمایه در امر مستقلات بشم و همه ما دستور به دست آوردن ثروت فراوون توی اون بازی رو می دونیم. چهار خونه سبز بخرید و اونو به یک هتل قرمز تبدیل کنید این آقای محترم نزد من اومد و به من گفت آیا من باید خونه هامو به هتل تبدیل کنم؟ من خندیدم و گفتم شما چند تا خونه دارید؟ اون برای لحظه ای فکر کرد و گفت کمی بیشتر از 700 تا من با شگفتی گفتم. چی گفتید؟ کمی نشستیم و با هم صحبت کردیم. من فهمیدم که او در تگزاس جنوبی مزرعه داره. در طول چهل سال گذشته هر سال چند خونه رو خریداری کرده و اونا رو کرایه میداده. اون دوران‌های رونق و کسادی اقتصادی رو در کسب و کارهای نفتی و گلهداری پشت سر گذاشته بود. تو دوره کسادی اقتصادی از کسایی که به لحاظ مالی مشکل داشتن، خونه‌هاشون رو می‌خرید و اغلب به خود اونا کرایه میداد. با افزایش جریان نقدیش، بازم به خرید هر چه بیشتر خونه‌ها، اغلب زیر قیمت 65000 دلار ادامه داد و هیچ وقت حتی یکی از را هم نفروخت. در بین صحبتامو متوجه شدم که اون از هر کدوم از خونه‌ها به طور متوسط 200 دلار جریان نقدی مثبت داره. من با تعجب گفتم: منظورتون اینه که درآمدی بیش از هزار دلار در ماه دارید؟ یعنی بیشتر از یک میلیون دلار در سال؟ اونم فقط از طریق کرایه دادن املاک اون گفت بله به همین خاطرم اومدم تا از شما بپرسم که فکر کنید که من باید تعدادی از خونه های سبزم رو بفروشم و تعدادی هتل قرمز خریداری کنم خرید اون خونه های سبز کوچیک وقت زیادی گیره. برای همین من از ایده ای تو در مورد خرید ساختمون های بزرگتر خوشم میاد من سری تکون دادم و خندیدم و گفتم من از شما میخوام که توی سمینار بعدی شما سخنرانی کنید و من شاگرد شما باشم بعد اسم و شماره تلفن مشاوران مالی و مالیاتی خودم رو بهش دادم و گفتم که با اونا تماس بگیره. من بهش گفتم که اون به مراتب از من جلوتره وقتی اون به خاطر شماره تلفن تشکر میکرد، خاطرات چهل سال پیش که پدر پول دارم با من و مایک روپولی بازی میکرد در ذهنم زنده شد. من زمانی با خانه های پلاستیکی سبزرنگ کوچیک روپولی بازی میکردم. و با آن مرد محترمی که داشت از پیش من میرفت اون بازی رو به حقیقت تبدیل کرده بود صدای پدر پولدار در گوشم زمزمه میشد که به من و ماک میگفت بانک همیشه میخواد به من بیشتر وام بده تا من مستقلات بیشتری بخرم بنابراین من همیشه چیزی رو که بانک میخواد ارائه میکنم فصل پنجم به خلاص شدن از بدهی بد چیست؟ اگر داخل گودالی افتادید، چه کار خواهید کرد؟ دیگر زمین را حفر نمی کنم نویسنده گمنام پیش از اینکه بتونید گام در جهت آزادی مالی بگذارید، در ابتدا باید دقیقا مشخص کنید که میزان بدهی بد شما چقدره برای خیلی تعیین میزان بدهی اونا مثل رفتن پیش دندون پزشکه. شخص میدونه که این براش خوبه، اما انجام این کار رو خوشایند نمیدونه. بعضی هم دیگه منصرف شدن، اگرچه اونا میدونن که مشکل بزرگی دارن، ولی نمیخوان براش کاری انجام بدن. ولی اگر برای ایجاد جریان نقدی مثبت توی زندگیتون جدی هستید، باید از مقدمات سواد مالی شروع کنید. الان یک آزمون کوچیک آورده شده تا توجه شما را به این موضوع جلب کنه. اگر جواب سوال شما بله است، عدد یک رو بگذارید. آیا معمولاً قبض‌های خودتون رو دیر پرداخت کنید؟ آیا تاکنون قبضی را از همسر خود پنهان کرده اید؟ آیا به علت نداشتن پول کافی، تعمیر اتومبیل خود را پشت گوش انداخته اید؟ آیا اخیراً چیزی را خریده اید که نه آن را لازم داشته اید و نه استطاعت را آن را داشته اید؟ آیا مرتبا بیش از مبلغ فیش حقوقی خود پول خرج می کنید؟ آیا به دلیل نداشتن اعتبار کافی تقاضای شما رد شده است؟ آیا برای رهایی از بدهی های خود در گره کشی ها شرکت کرده اید؟ آیا پس انداز کردن برای روز مبادا را به تعویق اید؟ آیا کل بدهی های شما بغیر از مبلغ وام از ذخیره روز مبادای شما بیشتر است؟ حالا اعداد را با همدیگه جمع کنید. اگر نمره شما سفره پس عالیه شما کنترل جریان نقدیتون رو در دست دارید. اگر نمره یک تا پنج گرفتید شاید لازم باشه برای بدهی های بعد خودتون فکری بکنید. اگر نمره 6 تا نه رو کسب کردید مراقب باشید. شما احتمالاً دارید به سمت یک ناکامی مالی پیش میرید. برنامه جریان نقدی اضطراری پدره اگر واقعا میخواد که کنترل جریان نقدیتون رو به دست بگیرید به سه جزء کلیدی نیاز دارید یک یک صورت مالی تا بدانید که از نظر مالی در چه موقعیتی قرار دارید دو انزبات شخصی سه راهبرد دراز مدت برای رسیدن به هدف مورد نظر. آیا تغییر عادات براتون سخته؟ واقعا همینطورم هم هست؟ ولی این به خودتون و اینکه چقدر مشتاق در دست گرفتن کنترل زندگی مالی خودتون هستید بستگی داره. فراموش نکنید که مجبور به طی کردن این مراحل نیستید. ولی اگر اقدامی نکنید، در وضعیت شما تغییری صورت نخواهد گرفت و در این تلاش بیهوده و صرف حقوق ماهیانه برای پرداخت صورت حسابهایی که هیچ وقت تمام نمیشن، گرفتار باقی خواهید موند. البته مگر اینکه در قرعه‌کشی برنده بشید. من که همیشه در شگفتم که چطور بعضی یا فکر میکنن برنده شدن توی قرع کشی واقعا طرح قابل اطمینانی برای پیشرفت مالیه ولی بیاید واقع بین باشیم اگرچه لازم نیست کارت رو از بین ببرید ولی لازمه تا یک طرح کاهش بدهی رو دنبال کنید دو مرحله نخست این کار این شکلیه اول به خودتان پول بدهید هر وقت که حقوقتون رو دریافت می قبل از هر کاری مبلغی را برای خودتون بردارید. اولین مبلغی که برداشت میشه نباید قسط اتومبیل قسط وام یا پول کرایه باشه. مبلغ معقولی رو برای خودتون بردارید و بعد بلا فاصله اون مبلغ رو به حساب پسنداز سرمایه گذاری جداگانه ای واریز کنید. و تا وقتی که آماده سرمایه گذاری اون به سایر ترخ نشدید، به اون مبلغ دست نزنید. خرید چیزهایی که واقعا لازم ندارید را کاهش دهید. چیزای اضافی توی زندگیتون هستن که ما همگی با اشتیاق میخواییم اونا رو داشته باشیم ولی واقعاً به اونا نیاز نداریم این میتونه یک اتومبیل تجملي یا صرف نهار در یک رستوران گرون قیمت یا لباسهای واقعاً گرون قیمت باشه هوس شما هرچی که هست فقط این عادت خرید از روی هوس رو کنار بذارید باید قبول کرد که در اینجا خود انزباتی و قدرت اراده نقش مهمی دارن ولی اگر واقعاً می‌خواید از شر بدیهای بد خلاص بشید لازم خصلت قدیمی کامروای معوق رو داشته باشید. من تغییری در نصیحت پدر پولار ندادم. اگرچه اون اعتقاد به توسعه توانایی‌های مالی برای برخورداری از سبک زندگی دلخواه بود، ولی گاهی پیش میاد که آدم مجبور دست نگه داره و اقدامات دیگری انجام بده تا بتونه دوباره در مسیر صحیح قرار بگیره. اون مسئله قدیمی رو فراموش نکنید که میگه اگر داخل گودالی افتادید چیکار میکنید؟ دیگه زمین رو حفر نمیکنم. گام بعدی چیست ؟ خیلی خوب، شما تصمیم گرفتید منضبط باشید و کنترل جریان نقدی خودتون رو به دست بگیرید. گام بعدی اینه. کنترل جریان نقدی خود را به دست بگیرید. یک. صورت مالی خودتون خودتونو که تازه تنظیم کردید مرور کنید. دو. تعیین کنید که از امروز درآمد خودتون از کدام چهار راه پولسازی کسب می کنید 3. معین کنید که میخواید ظرف مدت پنج سال از کدوم راه بخش عمده ای رو تأمین کنید. چهار مدیریت جریان نقدی خودتون رو تحریزی کنید. اول به خودتون پول بدید. درصد معینی از هر حقوق دریافتی یا هر مبلغی که از سایر منابع دریافت می رو کنار بگذارید. اون پول رو به یک حساب پسانداز سرمایه گذاری واریز کنید. همین که اون پول رو به حساب خود واریز کردید، تا زمانی که آمادگی سرمایه گذاری اونو پیدا نکردید، از اون برداشت نکنید. به خودتون تبریک بگید. شما تازه شروع به مدیریت جریان نقدی خودتون کردید. توجه خودتون رو روی کاستن از بدهی های شخصیتون متمرکز کنید. نکات و راهنماییهای ساده و کاربردی برای کاهش و حذف بدهی های شخصی شما پیشنهاد میشه. راهنمایی شماره یک اگر کارت‌های اعتباری با بدهی‌های موقت دارید، فقط یک یا دو کارت اعتباری را همراه خود داشته باشید. بقیه کارت‌ها را دور از دید خود، ترجیحاً توی گاف صندوق یا صندوق امانات نگهداری کنید. هر بدهی که به هر کدوم از این کارت‌ها اضافه می‌کنید، حتماً هر ماه تسویه کنید. دیگه بدهی بده بلند مدت رو موجب نشید. راهنمای شماری 2. به فکر کسب درآمد اضافی 150 تا 200 دلار در ماه باشید. الان که به مرور سواد مالی شما زیادتر میشه، انجام این کار باید نسبتاً آسون باشه. اگر نتونید 150 تا 200 دلار اضافی در ماه کسب کنید، شانس شما برای دستیابی به آزادی مالی فقط یک رؤیای دست نیافتنی خواهد بود. راه نمایی شماری 3 150 تا 200 دلار اضافه رو فقط برای شارج ماهیانه یکی از کارتهای اعتباری خودتون استفاده کنید. الان باید حداقل حد مبلغ شارژ و مبلغ اضافی 150 تا 200 دلار را فقط به حساب یک کارت اعتباری واریز کنید. برای بقیه یک کارت های اعتباری فقط حداقل حد مبلغ شارژ رو واریز کنید. اغلب مردم سعی میکن یک مبلغ اضافی نسبت به حداقل حد مبلغ شارژ رو به حساب همه کارت های اعتباری واریز کنند. ولی عجیبه که اون کارت ها هیچ وقت تصویر شن. راهنمایی شماره چهار. به محض اینکه کارت اول تسویه حساب شد، کل مبلغی که هر ماه به حساب اون کارت واریز میکردید رو به حساب کارت دیگه واریز کنید. الان شما حداقل مبلغ شارژ مقرر برای کارت دوم، به علاوه کل مبلغ پرداختی ماهیانه برای کارت اعتباری اول رو به حساب کارت دوم واریز میکنید. همین فرایند رو برای کلیه کارت های اعتباری و اعتبار خرید کالا مثل حزینه های فروشگاه ادامه بدید. بعد از تسویه هر بدهی، کل مبلغی که برای تصوی اون بدهی پرداخت می کردید به حداقل مبلغ پرداخت بدهی بعدیتون اضافه کنید. به مرور با تصویع هر بدهی مبلغ ماهیانه پرداخت بدهی بعدی افزایش پیدا خواهد کرد. راهنمایی شماره 5 به محض تصوی بدهی کارت اعتباری و سایر بدهی های بعد همین مراحل رو برای اقساط و اتومبیل و خونتون ادامه بدید. اگر این مراحل رو دنبال کنید، از کوتاه شدن زمان لازم برای خلاص شدن کامل از بدهی هاتون شگفت خواهید شد اکثر افراد میتونن ظرف مدت پنج تا هفت سال خودشون از بدهی رها کنن راه شماری شش. الان که به طور کامل بدون بدهی هستید مبلغ ماهیانهی رو که برای آخرین بدهی پرداخت میکردید رو برای سرمایه گذاری استفاده کنید ستون دارایی ها رو در صورت مالیتون تقویت کنید تمام مراحل به همین سادگی بود سایر نکاتی که به شما در به دست گرفتن کنترل کمک می کند تمامی صورت حساب های خودتون رو به موقع پرداخت کنید تا از جریمه دیر کرده پرداخت جلوگیری بشه. یک کارت اعتباری با نرخ سود کمتر و بدون کارمزد سالیانه یا انتقال وجه پیدا کنید. بعد ادغام سایر بدهی های کارت اعتباری در این کارت رو در نظر بگیرید. این کار موجب میشه بهره و کارمزد های کمتری رو پرداخت کنید. استفاده از دستگاه‌های خود پردازی که کارمزد کسر می کند رو کنار بگذارید. این مثل اینه که برای استفاده از پول خودتون مبلغی رو پرداخت کنید. شاید لازم باشد آدتهای پول خرچ کردن خود را کنترل کنید. عادت کنید پولتون رو به صورت نقدی بپردازید. فقط در موارد اضطراری از کارت اعتباری استفاده کنید. یاد بگیرید که به خاطر حوث اقدام به خرید نکنید. با استفاده از نیروی اراده خود نه بگویید. از مراکز فروش کالای عمده و فروشگاه‌هایی که تخفیف میدن خرید کنید. به بودجه خود احترام بذارید. اگر به سقف 200 دلاری هزینه خوراکی رسیدید، از خرید چیپس و بستنی صرف نظر کنید. به دنبال یک کسب و کار نیمه وقت یا سایر راه‌های کسب درآمد بیشتر باشید. کمی درجه کولر منزل رو کم کنید. چند تا از لامپ ها را خاموش کنید تا مبلغ قبض برق کمتر بشه. منزل خودتون رو از بالا تا پایین برای زمستون آماده کنید. لوله ها رو آیق بندی کنید. از شر پنجره های بادگیر خلاص بشید. هایی که انرژی هدر میدن رو حذف کنید. در استفاده از تلفن و تلفن همراه صرفه جویی کنید. خیلی از مردم نحوه صرفه توی این زمینه رو نادیده میگیرن. بیمه نامه های خودتون رو بازنگری کنید. ببینید که آیا میشه بیمه نامه های مناسب با همون هزینه پیدا کنید؟ فرانشیز خودتون رو افزایش بدید. تا سورت های ماهیانه شما کاهش پیدا کنه. خلاصه اینکه خودتون رو به مراقبت از نحوه خرچ کردن پول در اینجا و آنجا عادت دهید. یک هفته به خودتون فرصت بدید و فقط بررسی کنید که چقدر میتونید با نخریدن شامپوی گرون قیمت یا بیرون چام نخوردن صرفه جویی کنید. فرض کنید بین 30 تا 40 دلار در هفته صرفه جویی کنید. این میزان در طول یک ماه به صد دلار بالغ میشه. در مدت یک سال 1200 دلار یا بیشتر صرف جویی میکنید و این مبلغ قابل توجهی که میشه صرف تصفیه حساب بدهی کارت های اعتباری شما بشه هدف شما باید رهایی هر چه سریعتر از بدهی های بد باشه تا بتونید انتظار آیندهای بهتر را داشته باشید و مثل افراد پولدار فکر کنید بعد میتونید اقدام به خرید یا ایجاد دارایی هایی کنید که به واسطه درآمد غیر فعال حاصل از اون بتونید قبض تلفن قبض برق هزینه های بیمه و اینجور مخارج را رو بپردازید این فلسفه پدر پولار در مورد توسعه توانایی های مالی و انتخاب سبک زندگیه بدهی با پشتوانه و بدهی بدون پشتوانه دو نوع بدهی وجود داره بدهی با پشتوانه بدهیه که به وسیله وسیقه تضمین شده نمونه اون رهن خونه یا وام اتومبیله بدهی بدون پشتوانه بدهی که هیچ گونه وثیقه برای تضمین اون نداره که معمولا شامل صورت‌های کارت اعتباری، وام‌های خصوصی و صورت حساب‌های پزشکی هستن. اولین بدهی که باید سعی شود از شر خلاص شد، همین بدهی بدون پشتوانه است. توی سیستم پدر پدرپولدار، بدهی بدون پشتوانه دقیقا همون تعریف بدهی بد رو داره. و هرچه زودتر بتونید اون را حذف کنید، کنترل بیشتری بر امور مالی خودتون پیدا خواهید کرد. این به معنای پرداخت هرچه سریتر بدهی های, های اعتباری و همچنین سایر بدهی های احتمالی تونه. بهترین خبری که میخوام به شما بدم اینه که افراد با اراده با انجام اقدامات ساده ظرف مدت چند سال وضعیت مالی خوبی پیدا کردند. و از بدهی های بد عمده خلاص خواهند شد. شاید در وضعیت مالی حاضر که دست به گریبان اون هستید این به نظر غیر ممکن برسه ولی به من اعتماد کنید. این اقدامات برای شما مؤثر خواهد بود. فصل ششم بهای تغییر چیست؟ انجام مکرر یک کار معین و انتظار نتیجه متفاوت داشتن دیوانگی است. نویسنده گمنام وقتی که درباره موضوع بدهی خوب و بدهی بد صحبت می کنیم اغلب با این سوالات روبرو می میشویم. اگر بازار سقوط کنه چی میشه؟ اگر اشتباه کنم چی میشه؟ اگر نتونم بدهی تصویه کنم چی میشه ؟ اگر علاقه به مستقلات نداشته باشم باید چیکار کنم؟ وقتی که قیمت املاک در منطقه ما اینقدر زیاده من چطور میتونم پول خرید مستقلات را جور کنم. آیا همه بدهی ها آیا بهتر نیست اصلاً بدهی نداشته باشیم؟ همه این پرسش‌ها بر اساس نگرانی‌های واقعی که ما در این دنیا داریم، معقول و منطقی هستند و ما نباید اونا رو بی اهمیت تلقی کنیم. من از یک سرمایه گذار معروف شنیدم که می‌گفت: همه سرمایه گذاری ها را به عنوان سرمایه گذاری بد در نظر بگیرید، ولی باید به چیزی که اون سرمایه گذار معروف نگفت توجه کنید. نگرانی‌های شما کاملاً قابل قبول هستند. پس هیچ کاری انجام ندید. با این حال این ترس ها میلیون ها نفر رو فلج کرده و باعث شده که هیچ کاری نکنند همین ترس از ناشناخته هاست که باعث میشه اغلب مردم تغییری در خود به وجود نیارند بیایید یک بار دیگه به آمار برگرفته از تحقیق دولت نگاهی بندازیم در سن 65 سالگی یک درصد ثروتمند بودند چهار درصد وضع مالی خوبی داشتند 5 درصد هنوز هم به دلیل شرایط خود مجبور به کار کردن بودند پنجاه و چهار درصد با کمک اعضای خانواده یا دولت زندگی می کردند، سی و شش درصد فوت کرده بودند. برای من آشکار که یکی از دلایلی که فقط یک نفر از هر صد نفر به ثروت هنگوف دست پیدا کردند، این بود که مردم وقتی که باید تغییر می توانایی ایجاد تغییر کردنو نداشتند و به تکرار یک کار ادامه دادند. من مطمئنم که خیلی یا خاستار تغییر بودند. و به دلیل ترسها و تردیدهایی از قبیل اگر بازار سقوط کنه چی میشه یا اگر اشتباه کنم چی میشه یا اگر از پس بدهی هم برنیام چی میشه قادر به حرکت کردن نبودند. به عبارت دیگه خیلی ها به دلیل اینکه اسیر تردیدها و ترسهاشون هستن قادر به تغییر کردن نیستند. تردیدها و ترسهاشون اونا را وادار میکنه تا به تکرار همون کار قدیمی ادامه بدند و به امید نتیجه متفاوت بشینن که این به ستاق اون ضرب مثل قدیمی، دیوانگیه قانون دیگر نیوتن پدر پولدار می میگفت برای افرادی که از اشتباه کردن حراس دارن اغلب راحت تره که هیچ کاری نکنن یا یک کار رو مرتبا تکرار کنن یکی دیگه از قوانین عمومی اسحاق نیوتن قانون حفظ انرژیه که میگه یک جسم بی حرکت بی حرکت میمونه و یک جسم در حال حرکت به حرکت خودش ادامه میده به عبارت دیگه شخصی که اغلب ادامه انجام کاری را تر می‌بینه به خاطر اینه که جسم در حال حرکت با تکرار همون کار به حرکت خودش ادامه میده و کسی که تکرار کردن را مشکل می‌بینه به دلیل اینه که اغلب آغاز کردن کاری جدید مشکله چون جسم بی حرکت بی حرکت میمونه پس باهاش پولدار شدن انجام کاری متفاوته شروع کردن از ابتداست آغاز کردن کاری جدیده اشتباه کردنه و در آخر تحمل رنج کاری جدیده این به نظر ساده است و واقعا هم چیز پیچیدهی نیست ولی دلیل امتناع اکثر مردم از انجام کاری ساده که میتونه اونا رو پولدار دار کنه رو باید در قانون نیوتون جستجو کرد تغییر نباید محدود به شغلتان باشد چهار خونه جریان نقدی به این شرحه حرف ای نمایانگر کارمند حرف اس، نمایانگر شغل آزاد یا کسب و کار کوچک، حرف B، نمایانگر مالک کسب و کار بزرگ و حرف A نمایانگر سرمایه گذاره دلیل اینکه اکنون چهارخانه جریان نقدی رو مطرح می کنم اینه که اگرچه خیلی خیلیها دلشون میخواد که تغییر کنن ولی تعداد بیشتر اونا در یکی از این خونه ها گیر افتادند. مثلا خیلی ها بعد از فارغ تحصیل شدن شغلی پیدا می کنن و تا موقع بازنشستگی توی خونه ای باقی میمونند و این در حالیه که با تمام وجود میخوان کاری متفاوت مثل سرمایه گذاری یا راهاندازی کسب و کاری برای خودشون انجام بدن. خیلی ها حتی پس از تغییر هم در خانهی که هستن باقی میمونن. برای مثال خیلیها فقط در داخل خونه ای تغییر میکنن. برای همین برای دستمزد یا شادی بیشتر شغل عوض میکنن. دلیل اینکه از خونه ای فقط تعداد بسیار اندکی پولدار میشن اینه که قوانین مالیاتی توی اون خونه بیشترین سختگیری رو داره. اگر قرار باشه کسی از خونه ای به خونه دیگه بره، معمول ترین تغییر از خونه ای به خونه ای سه. کسی که در حال چنین تغییریه اغلب میگن، من میخوام برای خودم کار کنم. یا میخوام رئیس خودم باشم. پول دار شدن توی این خونه مشکله، چون اگر شخص دست از کار بکشه، درآمد اونم متوقف میشه. قوانین مالیاتی هم در مورد مشاغل آزاد بسیار سختگیرانه عمل میکنه. آسون ترین راه برای به دست آوردن ثروت زیاد قرار گرفتن توی خونه بی و آیه ولی اونا هم چالش های شخصی مختلفی ایجاد میکنن. توصیه من حفظ شغل فعلی و برای اینکه کار جدیدی رو توی خونه جدید آغاز کنید حداقل پنج سال به خودتون فرصت بدید. برای افزایش شانس پول دار شدن خانه خود را عوض کنید. دلیل اینکه خیلی ها به امید پولدار شدن توی قرره کشی ها یا مسابقات تلویزیونی شرکت می کنن، اینه که اکثر مردم یا در خونه ای یا در خونه اس قرار دارن بیشتر افرادی که به ثروت هفتگی دست پیدا می کنن، ابتدا در خانه های B یا آی قرار دارن یکی از راههایی که یک شخص میتونه شانس پولدار شدن خودش را افزایش بده، تغییر خانه خودشه. البته ضمانتی وجود نداره، ولی اگر از خونه B یا A اقدام کنید، شانس شما تا حد زیادی افزایش پیدا میکنه. تخمین زده میشه که کمتر از یک درصد از افرادی که به ثروت هنگفت میرسند، از خونه ای یا اس هستند. به عبارت دیگه، اگر مسمم هستید که در کوتاه مدت ممکن پولدار بشید لازمه که خونه خودتونو تغییر بدید. من میدونم که برای شخص خودم توی خونه ای یا اس هیچ شانسی برای پولدار شدن وجود نداشت. من میدونستم که بهترین شانس من توی خونه بی و A قرار داشتن. و در همونجا میلیون ها دلار پول درآوردم آوردم. وقتی که از مردم سوال میکنم چه کسی واقعا پول پولدار بشه از اونا این سوالام میپرسم که آیا مایل هستن خونه خودشون خودشونو تغییر بدن؟ بعضی ها پاسخ مثبت ولی اکثرم پاسخ منفی میدن. چرا؟ بار دیگه پاسخ رو باید در واژه تغییر جستجو کرد. برای خیلیا تغییر لازم برای حرکت از خونه های E ای و اس در سمت چپ به خونه های بی و آی در سمت راست بهای به گزافی محسوب میشه. بهای اونقدر سنگین که اکثرا حاضر به پرداخت اون نیستن. برای کسایی که تمایلی به تغییر کردن ندارن، بهترین کار یافتن راه‌های دیگه‌ای برای پولدار شدنه مثل خساست به خرج دادن و از بین بردن کارت های اعتباری، ازدواج به خاطر پول، کلاهبرداری. ولی برای اونایی که مایل هستن خودشونو تغییر بدن، من این طرح رو به عنوان راهنمایی سودمند برای افراد شجاع پیشنهاد میکنم. گفتم شجاع چون تغییر شجاعت زیادی لازم داره. هرم یادگیری. من این طرح رو به این خاطر تهیه کردم تا نشون بدم چرا صرفاً به مطالعه کتاب یا شرکت در کلاس نمیتوان تمام و کمال به موفقیت کافی دست پیدا کرد. من از این طرح به عنوان یک راهنما استفاده می میکنم تا نشون بدم برای پول دار شدن چه تغییراتی لازمه. من این مدل رو هرم یادگیری نامگذاری کردم که در چهار بچ اون هوش فیزیکی، هوش عاطفی، هوش روانی و هوش ذهنی قرار گرفتند. یکی از معلمان به نام دکتر فولر می گفت چهار وچهی یکی از بازسباتترین اشکال در جهانه و به همین دلیل هم هست که اهرام مصر برای مدتی چنین طولانی هنوز پا بر جا هستن. این حرفها به کنار چهار وچهی وسیله خوبی برای شرح بهای تغییری که برای پولدار شدند یا هر تغییر دیگری می باید پرداخت کرد. یکی از گفته های آلبرت انیشتین که من خیلی به اون علاقه مندم اینه. روحیه های اغلب شدیدا مورد مخالفت ذهن معمولی قرار می گیرن. البته من این جمله رو نگفتم تا باهاش کسایی رو که با عقاید من مخالفا محکوم کنم بلکه میخواستم به خودم یادآوری کنم که من روحیه ای و ذهنی معمولی هر دو رو با هم دارم برای توضیح نحوه کار حرم یادگیری من از این مثال استفاده میکنم. فرزن شخصی کتابی رو میخونه که توش توصیه شده برید و ملک خریداری کنید یا برید و بدهی خوبی رو پیدا کنید. بنابراین افراد به طور ذهنی این ایده رو پیدا میکنن. بروید و در املاک سرمایه گذاری کنید و بدهی خوب داشته باشید تا پول دار شوید که خیلی هم کار مشکلی نیست؟ ولی اکثر مردم اون کار رو انجام نمیدن. اونا به صورت ذهنی دربارش فکر میکنند ولی به صورت عینی و واقعی کاری انجام نمیدن چرا؟ چون اونا به لحاظ عاطفی مشکلی دارند مشکل زمانی بروز پیدا میکنه که افکار عاطفی اونا بر افکار ذهنی اونا چیره میشه وقتی که افکار احساسی به وسیله ایده های ذهنی جدید تحریک بشه پرسش هایی که قبلا مطرح شد مثل اگر بازار سقوط کنه چی میشه اگر اشتباه کنم چی میشه؟ اینها نمونههایی از حس ترس هستند که به مبارزه ایده ذهنی جدید حتی ایده ساده مثل برو و مستقلات را خریداری کن. و بدهی خوب داشته باش و پولدارش رو برخواستند اگر تفکر عاطفی قویتر از تفکر ذهنی باشه نتیجه عملی آن اغلب انجام ندادن هیچ کاریه. شخص ممکنه به اصطلاح به فلج تجزی و تحلیل مبتلا بشه و ساعت ها بشین هیچ کاری انجام نده ولی در دل با افکار و احساسات خودش بحث و جدل کنه یا اینکه شخص همون کاری رو انجام بده که موجی رادیو در طول مصاحبه با من انجام داد و مثلا کل ایده سرمایهگذاری در مستقلات رو ارزش قلم داد کنه. حتما یادتون هست که موجی رادیو به من گفت من که دلم نمیخواد لوله ی توالت تعمیر کنم و شب دیر وقت مستجر را بهم تلفن کن. این نمونه دیگه از تفکرات احساسیه که بر یک ایده ذهنی جدید قلبه میکنه. موجی رادیو هیچ وقت به اون ایده جدید فرصت نداد و بنابراین جلوی احتمال به دست آوردن ثروت زیاد و آزادی مالی از خودش رو سلب کرد و علاوه بر اون، در انتهای مصاحبه گفت، من فکر میکردم میخوای نحوه پولدار شدن رو به ما بگی. منم در پاسخ گفتم، این کار کردم. من راهی رو گفتم که خیلی ازش پولدار شدن و با داشتن مقدار زیادی بدهی خوب به آزادی مالی دست پیدا کردند و تو به تنها چیزی که میتونی فکر کنی، توالته. ناگفته پیداست که من دیگه به اون برنامه دعوت نشدم. قدرت ایده ها اون مجری رادیو تنها کسی نبود که راه ایده هایی رو مسدود می کرد که می زندگی اونا دگرگون کنن منم همین رو کردم ما همگی این رو کردیم ما همگی کارهایی میکنیم که ما رو موفق میکنن و ما همگی کارهایی میکنیم که ما رو ناموفق نگه میدارند. بنابراین آیا وقتی که میدونیم لازمه تغییر کنیم باید تغییر کنیم پدر پولدار می یکی از دلایل اصلی که اکثر مردم به ثروت هنگفت و آزادی مالی دست پیدا نمیکنن اینیکه اونا از اشتباه کردن میترسن. اون همچنین میگفت دلیل اینکه همه آدمهای باهوش و تحصیل کرده به ثروت هنگف گفت دست پیدا نمیکنن اینه که موقع تحصیل به اونا یاد دادن که اشتباه کردن چیز بدیه. در دنیای واقعی کسی که بیشترین اشتباه رو مرتکب بشه و بدون دروغ گفتن، تقلب، انکار یا سرزنش دیگران از اون اشتباهات درس بگیره برندست است. بنابراین وقتی که به طرح هرم یادگیری نگاه کنید متوجه میشید که یک دلیل عمده که مردم حتی اگر از نظر ذهنی دلشون بخواد باز هم پولدار نمیشن، اینه که اونا از نظر احساسی یاد گرفتن که از ارتکاب اشتباه بترسن. پدر پولدار اغلب میگفت، ترس از شکسته که موجب شکست اکثر مردم میشه. ترس از شکست، یک ایده احساسیه که لازم تغییر کنه. چون ایده احساسی، اغلب ثروتمندتر از ایده ذهنیه. به همین علت فقط تعداد بسیار اندکی پولدار میشن چیزی که توی مدرسه موثر بوده ممکنه توی زندگی واقعی موثر نباشه وقتی که پدر پولدارم سالیان پیش به من گفت بانک هیچ وقت از من کارنامهمو درخواست نکرده یکی از مهمترین درسهایی که یاد گرفتم این بود که چیزی که در مدرسه به درد بخور بوده ممکنه به درد زندگی واقعی نخوره هر وقت با افرادی ملاقات میکنم که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن اغلب متوجه میشم اونا انقدر ساده رفتار میکنن که نمیتونن از ایده های قدیمی بچه‌مون دست دوستان و مدرسه دل بکنند. به عبارت دیگه اونا از ایده های پیروی میکنن که حتی شاید متوجه اونا نباشن ایده هایی مثل مرتکب اشتباه نشوید یا یک شغل ثابت و ایمن پیدا کنید یا سخت کار کنید پول جمع کنید و خودتون رو بدهکار نکنید همه اینا برای کسایی که ایمنی رو به آزادی مالی ترجیح میدن ایده های خوبی محسوب میشن ولی اگر شما میخواهید که هرچه سریعتر پولدار بشید ایده های بدی تلقی میشن. بنابراین به های پولدار شدن برای خیلی بهای بررسی ایده های قدیمی خود و پیدا کردن اون ایده هایی که میباید تغییر پیدا کننده. ولی به یاد داشته باشید که با تغییر یک ایده ذهنی، اغلب به تغییر احساسی، فیزیکی و روحی نیز نیازه. چیزی که در جنگ کار آمد بوده است ممکن است در زمان صلح کار آمد نباشد. برای من ترس از شکست خوردن به اندازه خیلی ها مشکل ساز نبوده. وقتی که توی پونزده سالگی توی مدرسه در درس نگارش نمره مردودی آوردم، این بهترین چیزی بود که توی زندگی برای من اتفاق افتاد. امروز من از اکثر دانش آموزانی که در درس زبان انگلیسی نمره عالی گرفته بودند، پول بیشتری به عنوان نویسنده در میارم. همچنین من از اون شکست یاد گرفتم که صورت مالی من در واقع کارنامه من محسوب میشه. بنابراین فهمیدم که شکست خوردن چیز خوبیه اگر از اشتباهات یا شکست خودتون درس بگیرید. من متوجه شدم که میتونم با استقبال از اشتباهات نسبت به کسایی که از نظر درسی از من باهوشترن برتری پیدا کنم. فقط مشکل این بود که ضمن درس گرفتن از اشتباهاتم اون نگرش خطرجویی و بیباکانه من باعث محدودیت میزان یادگیری من هم میشد یکی از دلایلی که من برای جنگ در ویتنام داوطلب شده بودم این بود که در جنگ چالش های احساسی و جسمی وجود داشت در حالی که اکثر مردم میگفتند من که دلم نمیخواد به جنگ برم یا من مخالف جنگ هستم از نظر من بهترین کار رفتن به جنگ بود بنابراین ال رغم این که من از سربازی معاف بودم داوطلبانه به جنگ رفتم جنبه خوب این قضیه این بود که نیروی دریایی کلاس های آموزشی خوبی برای جوونا برگزار میکرد و به اونان غلبه بر تردیت ها و محدودیت های احساسی و جسمی را آموزش میداد. اونا به ما آموزش میدادند که حتی با وجود ترس و ضعف جسمی با آرامش ذهنی به عملیات ادامه بدیم. اونا به ما آموزش میدادند که حتی به قیمت از دست دادن جون خود به وظیفمون عمل کنیم و ماموریت رو به انجام برسونیم. در واقع اون آموزش‌های ذهنی، حسی جسمی و روحی بود که منو توی ویتنام زنده نگه داشت. جنبه بعد اون ماجرا این بود که وقتی از جنگ برگشتم، چیزی نمونده بود که به خاطر اون آموزش‌ها کشته بشم. 25 ساله که اون جنگ تموم شده و من در تمام این مدت دارم سعی می‌کنم هر چیزی رو که برای آمادگی توی جنگ یاد گرفتم و فراموش کنم. برای زنده موندن توی جنگ، به ما یاد داده بودن که با یک تصمیم آنی ماشه بکشیم. ما اغلب مجبور بودیم قبل از فکر کردن شلیک کنیم. بدون فکر کردن به جان خودمون وارد موقعیت بسیار خطرناک بشیم و حتی اگر دلمون نمیخواست دست به کارهای وحشتناکی بزنیم. به عبارت دیگه ما مجبور بودیم به لحاظ جسمی کارهایی رو انجام بدیم که شاید دلمون نمیخواست انجامشون بدیم. و ما باید اجازه نمیدادیم که افکار ذهنی یا احساسات و عواطفمون صد راه وظیفمون بشن. وقتی که از جنگ برگشتم متوجه شدم توانایی من برای غلبه بر ترس و تمایل من به جنگیدن صد راه پیشرفت من شده. در زمان صلح نیازی به رفتارهای جنگاوری نیست. من زود متوجه شدم سرباز نیروی دریایی زمان جنگ با سرباز نیروی دریایی زمان صلح خیلی متفاوته. کسایی در ارتش به درجه تیم ساری می که هم در جنگ و هم در زمان صلح خوب عمل کنند. در زمان صلح لازم بود که طرز فکر و رفتار من حتی در نیروی دریایی مثل یک سیاستمدار یا دیپلمات باشه. من باید صبورتر می بودم و با هر بهانه کوچیک دعوا را نمیداختم. اینا در بود که هنوز هم برای یادگیری اونا تقلا می کنم. امروز میدونم که اگر سریعتر خودم و تغییر میدادم از نظر مالی، اجتماعی و حرفه موفقتر می بودم. ولی نتونستم. همونطور که من 25 سال صرف آموختن جنگ کردم می باید بیشتر از 25 سال دیگر رو به آموختن جنگ نکردن اختصاص می دادم. خوشوقختان در غلبه بر ترس از شکست، از من یک کارآفرین و سرمایه گذار خوب ساخت ولی همین ها در رشد و موفقیت من محدودیت ایجاد کرد. همونطور که قبلا گفتم یکی از قوانین نیوتن میگه برای هر عمل عکس عملی مساوی و خلاف جهت اون وجود داره. برای رشد موفقیتهام لازم بود که تغییر شخصی جدی در خودم به وجود بیارم. برای من تمایل به جنگ باعث میشد در نبرت های کوچک پیروز بشم ولی من داشتم کل جنگ رو می باختم. چیزی نگذاش که متوجه شدم که اگر تغییر نکنم موفقیتم مثل موفقیت کسی که از اشتباه کردن میترسه محدود میشه برای رشد کردن لازم بود که تغییر کنم هر سکه دو رو داره من توی زندگیم برای مدت 25 سال روحیه جنگاوری رو توی خودم تقویت کردم و از اون پس روحیه دیپلماتیک رو توی خودم پرورش دادم موفقیت من با وجود هر دو روحیه رشد کرده اگر فقط یک روی سکه رو داشتم یقیناً موفقیت من تا حد زیادی محدود می شد به عبارت دیگه استعدادها و توانایی های من به نقاط ضعف من تبدیل می شدن برای کامل بودن لازم بود که نقاط ضعف خودم رو به نقاط قوت تبدیل کنم زندگی تغییر است هر وقت مردم از من می در چه چیزی باید سرمایه گذاری کنم یا چه توصیهی به من می کنی یا میشه جواب درست رو به من بدی؟ من تعملی میکنم و مانند ها از دادن جواب تفری میرم. دلیل اینکه دوست ندارم جواب بدم اینه که پاسخهای صحیح فقط به درد مدرسه و مسابقات تلویزیونی میخورند. توی زندگی واقعی هر کدوم از ما دارای تواناییها، استعدادها و قابلیت‌های منحصر به فردی هستیم. ما همچنین نقاط ضعف‌هایی هم داریم و همونطور که متوجه شدید نقاط قوت ما میتونن نقاط ضعف ما هم تلقی بشن. برای من زندگی تغییره. اگر امروز در حال تغییر نباشید، ممکنه با خطر بزرگی مواجه بشید. چون دنیا با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال تغییره. کسایی که به پاسخهای درست قدیمی و کارنامه های قدیمی چسبیدن با بزرگترین مشکلات مواجه هستند. با گسترش اینترنت فاصله بین دارا و ندار بیشتر میشه. امروزه ما برچه هایی داریم که هنوز دوره دبیرستان رو تمام نکرده، از طریق اینترنت ها دلار درآمد دارند. اون‌ها هنوز شغلی ندارند. و شاید هرگز هم به دنبال اون نباشند داشتن شغل ایده مربوط به عصر صنعت بود کسایی که قواعد قدیمی عصر صنعت رو کنار نگذارن از اونایی که خودشون رو با قواعد جدید عصر اطلاعات منطبق کردن عقب خواهند موند و حرف منو باور کنید اون قواعد با هم خیلی فرق دارن اگر شما همچنان معتقد به امنیت شغلی افزایش خودکار دستمزد و حق صنوات هستید باید بدونید که شما به قواعدی پایبند هستید که در عصر سنت نهاده شدند خوشبختانه هیچ وقت چنین فرصتی برای به آوردن سروتی هنگفت وجود نداشته ولی بهای به آوردن اون ثروت اینه که شما تغییر کنید نیروی روحیه شما تردید و دودلی نسبت به تغییر اغلب ترس آوره خود من مانند هر کس دیگه از ناشناخته ها ترس دارم منم مثل بقیه همین تردید ها و دودلی رو دارم منم دوست ندارم کارم درست از آب در نیاد و اشتباه کنم ولی خوشبختانه امروز همه باید تغییر کنند اکنون تغییر به علت وجود اینترنت همه گیر شده همه باید تغییر کنند در غیر این صورت باید بهای عقب خودشون خودشونو بپردازند این امر هرچند به آهستگی صورت میگیره ولی حتمیه مطمئن باشید که اگر بخواییم قدرت داشته باشیم توان تحمل این تغییر رو خواهیم داشت این قدرت رو میتونید در حیرم یادگیری پیدا کنید فان قدرت روحیه شماست یکی از بهترین چیزهایی که در مورد رفتنم به ویتنام وجود داره اینه که قبل از هر چیز شاهد نیروی روحیه بودم اگر با اکثر سربازهایی که به چشم خود جنگ رو دیدن صحبت کنید مطمئنم که بیشتر اونا از کسایی برای شما خواهند گفت که پارو بسیار فراتر از محدودیت‌های ذهنی جسمی و احساسی گذاشتند که امروزه جلوی پیشرفت ما رو گرفتند یکی از همکلاسی و دوستای عزیز دوران مدرسه ابتداییم به نام وین به مدت یک سال معمور انجام یکی از خطرناکترین معموریت دوران جنگ بود. اونا برای جمعوری اطلاعات باید در یک تیم جنگی کوچیک با چتر پشت خط دشمن فرود می و برای مدت یک هفته تا دو ماه پشت خطوط دشمن زندگی می کردن. یه شب من در منزل وین در هاوایی میهمان بودم. و داشتیم درباره تغییرات خودمون از بزرگ شدنمون در هابایی، رفتن به دانشگاه و بعد جنگ صحبت میکردیم. ما درباره اینکه تجربه جنگ چه تغییرات چشمگیری در ما و ارزشهای اصلیمون پدید آورده صحبت میکردیم. ما هر دو به آهستگی سرگذشت ها را تعریف می کردیم. و از شجاعتها و قهرمانیهای جوانانی که فراتر از مسئولیت های محولهشان عمل کرده بودند حرف میزدیم. ضمن گفتگوهامون که تا پسی از شب ادامه داشت، وین به آرومی گفت توی دوتا تا از ماموریت‌هایی که داشتیم من تنها کسی بودم که زنده برگشتم من امروز به خاطر مقاومت کسایی که کشته شدن زنده موندم من فکر می‌کنم دلیل اینکه این همه کهنه سربازان جنگ ویتنام از مشکلات عاطفی رنج میبرند اینه که ما در جنگی شرکت کردیم که به عنوان یک کشور قصد پیروزی نداشتیم ما که زنده برگشتیم فقط به این دلیل بود که ما دوستانی داشتیم که زندگی خودشون فدا کردن تا ما زنده بمونیم از اینها گذشته ما به کشوری بازگشتیم که به جای تشکر از کارهایی که انجام شده حالا درست یا غلط به سربازایی که بازگشته بودند توهین هم شد منم سربازای بسیار خستی رو دیدم که به جنگ ادامه میدادند اونها از نظر جسمی ذهنی و عاطفی عملا مرده محسوب میشدند ولی روحیه های اونها همچنان می جنگیدند تا زندگی دیگران رو نجات بدن درسایی که درباره قدرت روحیه انسان آموختیم در زندگی من و وین بسیار ارزشمند بودند. ولی به همون اندازه تجربیاتی که گفتم قمنگیزن امروز وقتی که میشنوم که کسی میگه اگه پول خودم و از دست بدم چی میشه یا اگر اشتباه کنم چی میشه یا اگر شکست بخورم چی میشه فقط مثل دیپلمات ها میخندم سرتکن میدم و میرم وقتی که با چشم خودم میدیدم چطور افرادی زندگی خودشون رو فدا میکردند تا دیگران زنده بمونن هنوزم همدردی با کسی که میترسه ده هزار دلارش از دست بده، سخته. البته لازم نیست که برای دیدن نمونههایی از قدرت روحی انسان به جنگ برین. این روحیه‌ایه که همه ما از اون برخوردار هستیم. چند سال پیش به تماشای مسابقات دو و میدانی که برای معلولان برگزار میشد رفتم. در اونجا یکی دیگر از همکلاسی‌هام رو دیدم که در یک تصادف رانندگی مجروح شده بود و هر دو پاشو قطع کرده بودند. در اون موقع اون پنجاه سال داشت. دوتا پاشو قطع کرده بودند. و اون داشت با دو تا پای مصنوعی توی مسابقات دوی صد متر سرعت میدوید. وقتی که داشت می میدوید من متوجه معلولیت جسمی اون نشدم. تنها چیزی که میدیدم و احساس می میکردم روحیه‌ای بود که اون رو پیش می روند وقتی که میدوید روحیه اون و روحیه سایر معلولان بود که جایگاه تماشایان رو پر کرده بود. همه ما که تحت تأثیر روحیه اون رو قرار گرفته بودیم، اشق در چشمانم حلقه زد. بار دیگه نیروی روحیه‌ی انسان‌ها به یادم اومد. متوجه شدم اگرچه من از نظر جسمی ازش بهتر بودم ولی شرایط جسمی اون به مراتب از من بهتر بود روحیش معلولیت جسمیشو به توانایی جسمی ذهنی و عاطفی تبدیل کرده بود همه ما در وجود خودمون چنین قدرتی داریم همه ما نقاط قوت و نقاط ضعف داریم من خیلی از استعداد تحصیلی برخوردار نبودم در نظام آموزشی کسی به من دانشجوی زرنگ نمی گفت از نظر احساسی هم با استعداد نبودم و دلیل اون هم توند مزاجی، عجل بودن و عدم توجه به جزئیات بود من از نظر جسمی هم استعداد نداشتم من یک ورزشکار درجی یک نیستم و حیکل زیبایی هم ندارم با این حال امروز میتونم بگم به شادی و آزادی مالی دست پیدا کردم چون من همیشه قدرت روحیه انسان رو بیاد داشتم هر دو پدرم و همچنین مادرم از اون روحیه برخوردار بودند و در مواقعی که شخصا دچار تردیدهای بزرگ بودم، منو تشویق به استفاده از اون نیرو می‌کردند. اگر امروز زنده هستم، همونطور که همکلاسی میگفت، به خاطر مقاومت کسایی که کشته شدند. امروز کسی هستم که می‌بینید، چون با زنی با روحیه قوی و قدرتمند ازدواج کردم. اون با روحیه خود به من اعتماد کرد و زمانی که دیگران بهش توصیه می‌کردند که ترکم کنه، در کنار من ایستاد. اگر به خاطر نیروی معنوی کیم نبود، من میدونم که الان این جایگاه رو نداشتم. اگر به خاطر دوستانم نبود که وقتی زمین خوردم و ایمانمو به خودم از دست دادم، در کنارم موندند و دست منو گرفتند، من الان اینجا نبودم. من به دلیل داشتن نیروی بدنی، عاطفی یا ذهنی به آزادی مالی دست پیدا نکردم. حتی وقتی که روحی خودم رو از دست داده بودم، اطرافیانم منو تشویق میکردند. اگر من تونستم تغییرات به وجود بیارم و به مساف چالش های جدید برم فقط به خاطر روحیه دیگران بود که بخش روحیه من برای ادامه مسیر شدند. من هر وقت روحیه پیدا کردم تونستم که به آزادی برسم. آخرین توصیه: بهای رفع مشکل کارنامه مالی چیست؟ حسابداری به مسئولیت پذیری ختم می می‌شود. پدر پولدار. خیلیا میگن من دلم نمیخواد چیزی درباره حسابداری بدونم من علاقه ندارم یک صورت مالی بروز شده داشته باشم. وقتی اینگونه نظرات رو می‌شنویم، من قبول میکنم که هر کس مختاره، هر چیزی که دلش میخواد یاد بگیره. در چنین مواقعی من یکی از گفته های پدر پولدار رو تکرار می کنم. حسابداری به مسئولیت پذیری ختم میشه. به عبارت دیگه یکی از مزایای خوندن حسابداری و تلاش مستمر برای بهبود صورت مالیتون اینه که این فرایند مسئولیت پذیریتون رو در قبال خودتون بهبود ببخشید. و اگر واقعا دلتون میخواد یه پولدار بشید، مسئولیت پذیر بودن در قبال خودتون، بهایی که باید بپردازید بعد از اون که کسب و کارم را از دست دادم پدر پولدار به من گفت وقتی اتومبیلت خراب میشه اونا به یک مکانیک آموزش دیده حرفه‌ای میسپاری و اون اون را تعمیر میکنه و مسئله ای که در مورد مشکلات ماری وجود داره اینه که تنها خودت میتونی اون را رفع کنی اون بازم شرح داد که وضعیت مالیت خیلی شبیه بازی گلفه میتونی کتاب بخونی به سمینارهای مختلف بری مربی استخدام کنی و کسی به تو درس بده ولی دست آخر این خودت هستی که میتونی مهارت خودتو در بازی گلف بهبود ببخشی یکی از دلایلی که فقط تعداد اندکی به ثروت هنگفت دست پیدا میکنن اینه که هر وقت دچار مشکل مالی میشن نمیدونن چطور خودشون از اون مشکل نجات بدن. هیچ هیچکس تا حالا مقدمات نحوه شناخت مشکلات مالی که ممکنه گریبانگیر اونا بشره به اونها نیاموخته. در نتیجه اگرچه مردم شاید بدونن که با مشکل مالی مواجه هستن ولی اونا نمیدونن چطور یک صورت مالی رو بخونن یا چجوری جوری سوابق دقیق مالی خودشون رو نگهداری کنن. پس واضحه که اونا نمیدونن مشکلات مالیشون چقدر جدیه یا اینکه چطور اونا رو رفع کنن. روبرو شدن با صورت مالی هاکی از ورشکستگی تجربه ناراحت کننده برای من بود. با این حال رویا با مشکلاتم بهترین کاری بود که میتونستم انجام بدم. به جای اینکه با تظاهر کردن بخوام نشون بدم که مشکلی وجود نداره، من با صورت مالیم و همچنین مشکلاتم رو در رو شدم و دقیقاً چیزی رو که نمیدونستم و همچنین چیزی رو که باید برای اصلاح وضعیت مالیم یاد می‌گرفتم رو پیدا کردم. پدر پوللار وقتی که دید بعد از مواجه شدن با کشتی به گل نشستم، دارم نالو و شکایت میکنم، به هم گفت: اگر مایل باشی که با حقیقت مواجه بشی و از اشتباهات خودت درس بگیری، اون وقت، خیلی بیشتر از اون چیزی که من بتونم به تو درس بدم، خودت درباره پول پول چیزیات خواهی گرفت. اون بازم به توضیح خودش ادامه داد. وقتی که با صورت مالی خودت مواجه شدی، مثل اینه که با خودت و با چالش های مالی خودت مواجه شدی. کم کم متوجه میشی که چه چیزی رو میدونی و چه چیزی رو نمیدونی. وقتی که به صورت مالیت نگاه میکنی، در برابر خودت پاسخگو میشی همونطور که یک بازیکن گلف نمیتونه برای امتیازات بد خودش که روی صفحه امتیازات نقش بسته کس دیگه ای رو سرزنش کنه، همین که به سوابق حسابداری خودت نگاه کنی، به خودت پاسخگو خواهی بود. رویا با مشکلات مالی و رفع اونها بهترین درسی بود که یاد گرفتم. چون با مواجه شدن با اشتباهاتم مسئولیت نقایص کارم رو به عهده گرفتم. با مواجه شدن با صورت مالی متوجه شدم که در درس امور مالی نمرات مردودی گرفتم دریافتم اون قطعا هم که تصور می کردم از نظر مالی هوشمند نیستم با ارتقای اون نمرات من چیزی که لازم بود برای کسب به آزادی مالی یاد بگیرم رو پیدا کردم و یاد گرفتم و این بهایی بود که پرداختم فکر نهایی. راه های زیادی برای پولدار دار شدن وجود داره یه راه از بین بردن کارت های اعتباری و با خساست زندگی کردنه من این راه انتخاب نکردم چون بهای سنگینی داشت. راه دیگه کلاهبرداری، ولی از نظر من بهای اون واقعا زیاده. راه دیگه پولدار شدن، افزایش سواد مالی، هوش مالی و مسئولیت پذیری در برابر خود، مسئولیت پذیری در برابر نتایجتون، آموزش مستمر و پیشرفت خود در انسانی بهتر شدنه. در مورد من این بهای بود که ماگل به پرداخت آن بودم. امیدوارم شما مایل باشید بهای آموختن هر چیزی که لازمه یاد بگیرید. تا به آزادی مالی برسید رو پرداخت کنید. برای اطلاع بیشتر از کتاب‌های صوتی شادین پژواک به وبسایت www.shadinko.com مراجعه نمایید و با عضویت در وبسایت ما از مزایا و امتیازات